اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و تشتکی الى الله و الله يسمع تحوركما این الله سمیع بصیر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت میکرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش میشنید و خداوند شنوا و بیناست الَّذِينَ <تصفيق> این إلا اللائی ولدنهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفون غفور کسانی که از شما نسبت به همسرانشان ظهار میکنند و میگویند انت علا که زهر تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند، مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنیا آورده آنها سخنی زشت و باطل میگویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است.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 باله تعملون کسانی که همسران خود را زهار میکنند، سپس از گفته خود باز میگردند باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستور است که به آن اندرز داده میشوید و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است.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 و, عذابٌ و کسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد و کسی که این را هم نتواند شست مسکین را اطعام کند این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند این الذین یحادون الله ورسوله كبتوا کوبتو کما کوبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وال کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند خار و ذلیل شدند، آنگونه که پیشینیان خار و ذلیل شدند. ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب به خار کننده یوم یبعثهم الله جمیعا فینبیعهم بما عملو احصاه الله و نسوه والله علا کل شیئ شهید آن روز که خداوند همه آنها را برمیانگیزد و از اعمالی که انجام دادند با خبر می سازد. اعمالی که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است علم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنا من ذلك ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم آیا نمیدانی که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است میداند هیچگاه سه نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست و هیچگاه پنج نفر با هم نجوا نمیکنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست، هر جا که باشند، سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می چرا که خداوند به هر چیزی داناست. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِن نَجْوَا ثُمْ بَيَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جهنم فبئس آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو میآیند تو را تهیتی و خوشامدی میگویند که خدا به تو نگفته است و در دل میگویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنان کافی است وارد آن میشوند يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع میشوید بپرهیزید این من نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا لیحزون الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ نجوا تنها از سوی شیطان است میخواهد با آن مؤمنان قمگین شوند ولی نمیتواند هیچ گونه زرری به آنها برساند جز بفرمان خدا، پس مؤمنان تنها بر خدا تبعکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید و به تازه وارد ها جا دهید وسعت بخشید خداوند بهشت را برای شما وسعت میبخشد و هنگامی که گفته شود برخیزید برخیزید. اگر چنین کنید خداوند کسانی را که ایمان آوردهاند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی میبخشد و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است یا او الذيین عملون. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه است، و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است. اَأَشْفَقُتُمْ اَن تُقَدِّمُوا بین يَدَيْنَ جواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا فأقيموا الصلاة الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آنچه انجام میدهید با خبر است الم تر ایلالذین تولوا قوما غضب الله علیه ما هم منكم نههم مینگ و, على الكذب و هم يعلمون. آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد قذب خدا بودند ریختند؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان سوگند دروغ یاد می کنند که از شما هستند در حالی که خودشان میدانند؟ دروغ میگویند عبد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته، چرا که اعمال بدی انجام میدادند اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم, فلهم عذاب مهین آنها سگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند از این رو برای آنان عذاب خار کننده است. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئك که اصحاب النار هم فیها خالدون هرگز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهی حفظ نمیکند آنها اهل آتشند و با در آن میمانند یوم یدعسهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ان على شيء ألا إنهم هم الكاذبون بخاطر بیاورید روزی را که خداوند همه آنها را برمیانگیزد. آنها برای خدا نیز سوگند دروغ یاد می‌کنند همان گونه که امروز برای شما یاد می‌کنند و گمان می‌کنند کاری میتوانند انجام دهند بدانید آنها دروغ گویانند، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان بر مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده آنان حزب شیطانند بدانید حزب شیطان زیانکارانند این الذين يحادون الله ورسوله اولئک اولئک في الاذالین کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند، آنها در زمره ذلیل ترین افرادند. کتب الله لا اغلبنا انا الله عزيز خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز میشویم چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألائن حزب الله هم هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشند آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده و آنها را در باغ‌هایی از بهشت وارد میکند که نهرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن میمانند. خدا از آنها خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند آنها حزب هند بدانید حزب پیروزان و رستگاران هم.